که بگیم که مثلا حالا این ضربال مسل یک ضربال مسل هنوزم استفاده میشه و این ضربال مسل ها همینطور خیلی هاشون قیمت خیلی زیاد دارد. این همین میخورد ای با لب شیربوی شبه بی گمان زود پرخواهش یه جایی دیگه هم باز رستم به تعنم صحرا یک دهنه روش بیده. میگه گریبون که شمشیر با شیر چون این آشنا شد تا هرگز ممیر میگه در واقع با وجود اینکه دهن یکی بوشیر اینطوری بتونه شمشیر زنی بکنه پس اینشالله دیگه زنده باشی یه جور به تنه بهش بیگه که روز تو بچه داری شمشیر میجنگی و اینها حالا نگاه کنی از بیت بعدی رستم داره فضا رو از تو ذهن خودش عوض میکنه هم بحث رو عوض میکنه، همم هم صحبت از خوردن شراب میکنه شراب و, می و اینا برای چی؟ این دیگه اگر نه زمان غم... چی؟ اگر نه اگر نه باد غم دل زیاد ما ببرد نشی به حادث بنیاد ما زجاف بکرد حافظم میگه که ما بادر رو میخوریم که چیه؟ که غممون از بین بره یا هم شراب ترخون که من برکه که تا یک دم بیاسای ز دنیا و شراب شورش شراب خوردن زادشن شده بیشتر برای از بین بردن چیه؟ از بین بردن غم ها هست اینم پس این که میگه بباشیم یک یک دم برزنیم یکی بر لبه خوش اینم برزنیم که این لبه خوشکمون بزنیم شراب برای چی الان میخواد بخوره؟ برای فراموش کردن و خوستش که یادش بره که نکنه این به جای که درست هسابی تحقیق بکنه بیشتر میخواد صورت مسئله رو در کل چه کار کنه صورت مسئله رو کلا پاک کنه و آزاد بشه از این فکر که حالا چه اتفاقی افتاده نه خب، از دوستان حاضر که که میخورد؟ شما میخوری که هم؟ برای در مورد این صحبت خیلیس میخورده سلام شما <تصحبت> این طرف در این درداشته که مثلا داره میدونیم این طرف ترسیده حالا یه بخوردن یک همین شراب مثلا در صفاش گم نکنه و اینا حالا این تحریف از در حوانش را که اون بوده اسطورهی رو پوشش نمیده یعنی که مثلا یه اسطوره مثلا مثل تن تن بحران یه عمری داشته با من زندگی میکرد دیگه مثلا فیلمان مورد هفتا ولی مثلا اون نبرد خیلی من نه, نه که ترسش بریزه ها برای اینه که از تو این فکر رو بیاد بیرون این تشویشی که تو دلش به وجود من نکنه این پسرا خودم باشه رو کلن از یاد ببره اگر نه باده دل دلزه یاد ما ببرد این هست شبت بیگوان زود پرخاش شد خب از دوستان، میخونید خودتون؟ نه، خواهش بکنم فرازی هم که تازه رسیدن همه هسته بخون هم همه هسته بخاشیم یک روزو دم برزنیم یکی بر خوش، دم برزنیم گوزان پس گراییم نزدیک شاه به گردان ایران نماییم را مگر بخت رخشنده بیدار نیست بگرنک چندین چون این کار دوشگار تو چرا بخاطر اوه یعنی این او باید بدونیم هلا، آره، آفرد سخت آره، خب این تحکید داره که او خونه بسه و وقت خونه چو دریا به موجنده راید جای ندارد دم آتش تیز کار در مرا چون ببیند دور، دلش ماتم آرد به هنگام سور چون ماننده سام جنگی بود، دریر و کشیبار و سنگی بود به این تیزی اندر نیاید به جنگ، نباید گرفتن چون این کار، کار تنگ به می درس بردند و مستان شدند زیاد سپه به دستان شدم دیگر روز شبگیر هم برخمار بیامد آمد تمتن بر آراز کار زمستی همان روز بازی استاد دوم روز رفتن نیامد یا. سه دیگر سهرگفت بیاورد نه نی, نی هورا یاد کابوس کهی به روز چهارم بر آراز گیف گفت با گرد سالار نیف که کابوس تند دست و نیست همین داستان بردلش خوار نید بود از این کار و دل پرشتا شده دور از اون خرد و آرام و خواب به زابلستان ستان گرده رنگ آوری زمین باز, باز پیکار و جنگ آوری به دو گفت رستم که مندیش از این؟ مندیش از. من از. من از این که ما که با ما نشورت کسم در زمین بفرمون تا را زین کنم من در دم نای روبیم کنم سواران زاول شنیدن نای برفتن با ترک و جوشنز جا جوشن دست شما در نکنه خیلی من خب حالا رستم اگر یادتون باشه کابوس برستم سپور قدقن کرد خیلی تحکید کرد که گفتی چی؟ بله اگر که بیت سی سد رو نگاه کنید از سیسد ده که به درواق رستم داره نامه مینویسه چو نامه خن سید و یازده چو نامه بخانی این کاووس به رستم بوده چو نامه بخوانی بروز و بشب مکن داستان را گشاده دولب مگر با سواران بسیار بورس زابل برانیم براری برانی برانی فروش میگه درباره این داستان صحبت نکن مگر اینکه از زابل حرکت کنی بعد باز دوباره توی سی صد و بگیب میگه بگی وانگلی یعنی گفت برسان دو، انان تکاور بباید پسو نباید که نزدیک رستم شوی به زاول، به مانی و گرب نمیده نباید اونجا بری بر دل رستم بشینی و بخوابی و استراحت کنی و فلان اینا اگر شب رستی روز را بازی فقط بهش اجازه اگر شب رسیدی، آن شب موقعی حرکت نیست صحبش برگرد، بگویش که تنگم در آمد نبرد یعنی معطر، نه. ولی اینجا رستم پیشنهاد میده که حالا به زابل بمانی و بغنوی و حالا یه شرابی بمانیم و یه بله یه برز به پا کنیم و اینا که اینجا داره میگه که بباشیم یک روز و دم برزنی یکی برلبه خوشک نمیده پیشنهاد که یه روز حالا بمونیم یه شرابی بکنیم گیه هم خب هیچی برسته نمیگه اوزان پس گراهیم نزدیک شاه به گردان ایران نماییم این آقای با این اراق که کرده تاکید داشته که ما تا اونجایی که ممکنه و نخونیم توش حرفش از یه لحاظ من دغیر. خود شما که رشته ی زبان های باستانی میخونید می‌دونید که ما یه و داریم که عربیه یه او داریم که فارسی که او فارسی ما از عد پهلوی اومده وجه فارسی ما از اد پهلوی اومده و وی که ما میخونیم از چی اومده از وی که توی عربی و آرامی و اینا هست و هر دو و هر دو توی فارسی چه بخوام بگم منو تو چه می من و تو هر دو واو نوشته میشه و این اثر عمل خواننده هست ما توی اول بگیم فارسی گفتا تقریبا وا استفاده نمیکن اما گفتم و رفتم و اونجای گفتم و رفتم و این دوی نوشتار و اخبار رادیو وقتی بکنم یه جایی مثلا خیلی رسمی سخن رانی کنیم میگیم و کاملا بونه این مئیار داره بونه نوشتار رو مئیار داره و در صورتی که میگن تا اونجایی که ممکنه در بونه این مئیار و نوشتار هم اگه میخواهید مثلا یه گامیه برای سر گفتن که او رو به کار ببنید به جای و وقتی خودمون بازم پس گراییم نزدیک شاه به گردان ایران نماییم راه میگه بعد از اون یه روزی که بشینیم و دم بزنیم حالا یعنی رو بیا هفت بزنیم نفس بکشیم در ظاهرش بابل به خوشکمونم نم بزنیم یعنی شراب بخوریم بعدش گراییم نزدیک شاه یعنی به سمت شاهتمایل بشیم گرایش داشته باشیم ببین به اون سمت به گردان ایران نماییم راه بله یه جایی دیگه میگه که رستم شبان بود و ایشان رمه رستم در واقع حالت رهبر معنوی سپاه رهبر با رسمی سپاه کسی که حکم فرماندهی سپاه داره گیو چیزه توسه توس هست که سپهدار ایران هست رئیس سپاه کسی که حکم دولتی تو دستشه که فرمانده سپاه باشه توس زرینه کفشه اما رهبر معنوی سپاه رستم این که رستم شبان بود و ایشان رمه الان چند به بعده نه. که اینو میبینیم به بخش کابوس کدوم شهر بوده؟ کابوس بیشتر توی شاهنامه به نظر می پارس بوده مثلا طبقه حالا بابر درست یا غلط که اینا همه حالات اسطوبه ای داره شیراز هرانش مثلا استخ جاهایی گفته نشستنگاهش بوده من چون خودم پایان نامه دکتری روی کابوس بوده صده تو فارسی ابن بلخی میگه پایتخت رو از بلخ به فارس تغییر دادندا یعنی درباره این شاهان پیشدادی و قدیم حالا یا میگه پایتختشون اصفه بوده یا میگه بلخ بوده یعنی این دو تا که خیلی رفت جغرافیایی هم به هم میگه نند یه دفعه اسم اصفه نمیاد یه دفعه اسم بلخ میاد اینجوری. درید بلخ علاقه بلخ نه در افغانستان. افغانستان آره شهر که ذرتاشت هم ظهور دعوتش و اون ش... کهی که از ذرتاش نمایت کرده بیشتر جغرافیاش به همون برد نزدیک است. برد. حالا خوزان پس به گردان ایران نمایی راه بله خب رستم بهشون خط میده مگر بخت بخشنده بیدار نیست اگر نه چون این کار دشوار نیست توی شاهنامه خیلی به تقدیر و بخت و اینها چیه اعتقاد داره میگه مگر اینکه بخت و تقدیر ما در واقع با ما یار نباشد وگرنه این کار دشواری نیست که پیروزی بر این جوانی که حالا خیلی هم دلاور و تنومند و مثل سام سواره کار دشواری نیست حالا در تایید فرمانی شاد خودش بیت بعدی میگه چو دریا به موجندر ز زجای ندارد دم آتش تیز پایی اینجا دریا کیه؟ در این... دراغه از کیه؟ از خود رستمه خودش رو به دریا تشفیح کرده دریا استدار از خودش. چو دریا به موجندر ز زجای ندارد دم آتش تیز پاییم این آتش هرچقدر دم که بزرگ باشه شله باشه سوزان باشه، داغ باشه، کنار دریا اگر باشه دریا یه موجه محکم بیاد روی این آتش این آتش دیگه نمیتونه مقاومت کنه در برابر این موجه, موجه. دریا حالا اگر که خواستید این تجربه رو موقعی که دریا در حالت مرد هست موقعی که دریا داره آبش میاد بالا دریای جنوب که جز میکنه اگه یه وقت رفتید اونجا دریایی که در حالت مرده کنار نزدیک که دریا ولی جایی که هنوز خیز نشده آتیش درست کنید چند دقیقه بعد میبینید که آتیش هالا هرچقدر ها هر هم که آتیش بزرگی باشه موجا بیستن بهش و اصلا هم هوا هم به مرور نیم ساعت بعد آتیش خاموش میشه این تجربه رو ندارد دم آتش تیز پ درفش مرا چون ببیند دور دلش ماتم آرد به هنگام سور درفش در واقع چی بوده؟ در واقع نمادهایی بوده که هر یک از پهلوانان برای خودشون داشتن کل ایران برای خودش یه درفش داشته به اون درفش می گفتن چی؟ درفش کابیان که حتی نقاشیشم تو کتابهای بعد از اسلامی کشیده شده یه این تصویری هست این واقعا کشیده شده فکر نکنید این مثلا که داخل قدیمی این رو کشیدن میگن که در نقدر قادسی یه همچین چیزی در آن معمولا یک تکر کارچه‌ای بوده که یک نقشی روش بوده که برسر یک نیزه‌ای که مقابل لشکر حرکت می‌دهد و حفظش هم یکی از باجبات بوده و یه حرمت داشته دیگه این میگم که یه همچین چیزی تو نبرد قادسیه به دست مسلمانان میفته از نبرد مسلمان‌ها، عرب‌ها، با کی با رستن و فروسات سپاه ایران توی این‌النهره که نبرد قادسی هست و می‌مرانش پیش اومد و عمر توش پر از جواهر بوده جواهرشان بوده اینو باز میکنه تکه تکه میکنه و عنوان میکنه به عنوان بی تورمال میکنه بین اصحاب قیام بعد حالا خود ایرانیا درباره پیشینه این دروغش میگن که چی بوده این یک چرخ حالا در واقع نباید بر برین هست توی خود شاهنامه اصلا گفته شد جاهای دیگه گفته شده که این چرم شیر بوده پیش‌بعد کابه آهلگر بود که موقع آهنگری ازش استفاده می‌کنه و وقتی قیامش رو بر علیه زحاق شروع می‌کنه و فریدون رو به رهبری این قیام رو به عنوان شاه بعدی انتخاب می‌کنه فریدون وقتی که به قدرت می‌رسه دستور می‌ده که این چیز رو، این چرم شیر رو مزین کنه به جواهر و اینها و هر شایی هم که میاد بهش جواهراتی اضافه می‌کنه تا همچنان بوده تا نبر یعنی تو و قاتسی معتقدبط بودن که براش پیشین چند چندصد ساله بوده درقل که دیقدر بر پیشین استوره قائل شده بود مثل آتش دار آذرگشت است و آذ کلخت براش پیشین استول ای اینو جمشید ساخت اون رو گشت ساخته اون رو چیز تخص رو ساخته این هم هم میطور براش پیشین شده و هر دست دو دوره اشکگانی، چونه از اونجایی که ما یک لشکر منظم من حکومتی نداریم هر گروه از اشراف و فعودانه ها برای خودشون یه لشکر داریم مثلا سرن برای خودش لشگر داره هر لشکر در واقع محلی که موقعی جنگ ممکن بود یکی از اونها به نبر با مثلا رومی ها یا ریاه همشون چند تاشون با هم برن برای خودش یک نماری داشته و ما بازتاب به این سنت عشقانی رو تو دوره چی می‌بینیم؟ تو دوره کیانیان می‌بینیم تو دوره کیانیان هم شبیه دوره ساختار شبیه دوره عشقانی هست که وقتی که دشمن حمله می‌کنه دروهای مختلفی به داد حکومت می‌رزن یکیش خاندان رستانی، یکیش خاندان کشفاده یکیش خاندان برگین و میلاد هست که هر کدوم برای خودشون یه نوانی دارن و مثلا درفش رستم رستم برای خوشی درفش جداگانه داره این میگه درفش مراچون ببینند زدور تو همین داستان درباره درفش رستم صحبت میکنه درفش رستم روش نقش چی هست اژدها اژدها درفش درفش رستم اژدها درفش خود کابوس درفشش جدا درفش کابوس تقریبا به عنوان درفش ملی کل ایران به حساب میاد درفش آقای کابوسه یا یعنی حس دوران اشکانی که شاه هم به عنوان در واقع درست سروری و برتری داره ولی سروری و برتریش مطلق و همچین فراگیر نیست شاه هم برای خودش چیه؟ درفشش چیه هست؟ ما شیر، خوشید پیکر. پیکر گودرز درفشش چی هست؟ حالا می برمیخوریم درفشی گودرز شیر پیکر هست هر کدوم از پهلمانم با گلون سفا و گردان و لشکری که دارن برای خودشون یک چی دارن کیخسرو این چیزها رو پشت هم آورده. خداسنکی کیخسرو هم آورده. آره، اونجا که اسامون اینم آورده. آینه آره اینجا هم وقتی آره، که سهراب میره یه بلندی میسته و به بهجیه میگه اونی که شیر پی کرده درخت کیه؟ به گفت مثلا کو شاه ایران بود اون کیه که اجذاب پی کرده. اون کیه که ماه پی کرد؟ اون کیه که, اون کیه که, اون کیه که یه چیزی بگم درسته یا نه؟ یعنی برداشتی که من کردم از چند تا کاری که ایرانیا می‌کنه یکی اینکه یه چرم گاب در آفریقا می‌ره. نه اینو مثلا چند سال دنبال خودش مییارم، مسر که هیچی از اون درف باقی نمونده بعد این همه شکست و اینا. یکی اینکه این مسئله جغرافیایی که, ایشتر... جغرافی که تو شاهنامه هست که مازندران یا وقتو هند، یه وقتو نماد ایران. من این حسو دارم که ایرانیا بعد از اینکه حالا شکست می‌خوره یا به یه دلیل تاریخی یا به دلیل مذهبی که یه تغییری بدن. اون نماد رو حفظ میکنن آگاهانه یعنی میدونن که این درفش دیگه درفشی نیست که مثلا فریدون اومده فروهشت از اون زرد و سرخ و ولی خب حالا خودمون یه دونه زرد و سرخ و برنه خب میگیم همونه بعد، حالا اگه این پذیرفته است من فکر کنم اونجایی ما دقیق در شکریت که مثلا خودمون گول خوردیم، اون نماده رو باور کردیم که این مال است و ما دیگه فریدون بشیم. یعنی هموقعی یه یکی دیگه برگرده احساس کنه، مدفره یه روم دوباره، ستا را گزم کنه این مسئله تو همه عدیان و افوان هست اون میل و عشق به ازلی کردن یه مسئله مثلا تو خود تشیع و اسلام مثلا میگن که موقعی که مثلا حضرت آدم میخواست فلان کار بکنه گفت یا حسین مثلا موقعی که ناچه که الله مصلا الله محمد و آرمان. میخواد مثلا به دلیل عشق و علاقه که به پیامر اسلام داره میخواد وجودش رو عذلی کنه بگه او تا بوده او نبوده این بوده خودمونم یه همچین حسی داره مثلا یهو من دیدم دیگه یه دانشگاه جندی شاپور نشتو با بیش از هزار و سال سابقه <تصحیح> اون تموم شد خودش نچسبون یا اون مثلا ببینید یه شرکتی داره اسمش رو نگاه که یه دفعه شو تأسیس 1298 هجری شمسی کجا امام مودت فرض واضی یعنی یه چیزی یه اسمی اونجا اصلا خودشو پیبند بده به اون یه جور ازلی کنه خودش و این چیزی که شما می‌بینید بدترین اتفاقی که در این زمین میتره وقتی که این ازلی بودن رو باور کردن دیگه با از دست دادن اون دیگه خودشونو از دست بدترین یعنی اوجش توی خود خون ساسانیان جوری بوده که اواخر سفته باید. ساسانی کاملا در اثر سر تبلیغات این جا افتاده بود دیگه خون ساسانیان فقط او خون اصلی جمع و کیقوباد و فره داره تو این خونه از این فره دیگه هیشکست جو ساسانیان نمیتونه برمیران یا ساسانی یا هیچکس یا ساسانیان یا دیوان جوریدمونی از نجاد دیب خشم که بهرانو چوبین بیچاره لایق بوده سر... چه میدونم خب عقل و فهم و شعورش. درایتش خیلی بیشتر از هرمز 4 و خسرو پرگیز بوده از این پدر و پسر که بهتر بوده بین این پدر و پسر یعنی یک سال اندیشاه میشه ولی وقتی شاهنامه رو قسمت اسمت بهرام چوبین می‌بینید مشروعیت نداشته یو یکی میومد وسط دربارش می‌گفت تو خجالت نگی سیاستالا این خون فاطشایی رو پایمال کردی تو فکر میکنی میتونی پشاهش هیچ قهرس ساسانه چوبین اینجوری از کف میره و بعدم میگه که از این سالیا از این و از این داستان سالیان بگذرد و از این از این داستان سالیان بگذرد از این تخمه گیتی کسی نسل برده یعنی دیگه تخمه و نژاد شاهی ایران کلا چی میشه در دنیا از بین میره پس دیگه هیچکس نمیتونه شاه بشه شما در اصل بهمون میتون <تصفيق> اصلا اگر که قسمت بهرام چوبین فردوسی رو دنبال کنید میبینید که فردوسی خود شخصا یک علاقهی به بحرام داری که شاه ابلخ سوار با یه اعترامی شما هم یه سنپاتی نسبت به بحرام چوبین پیدا میکنید ولی آخرین لحظه وقتی بهرام بحرام رو می‌خواد نابودش کنه چون داستان از در واقع ظاهراً نسخه نوشته شده دربار ساسانی به واسطه به دست فردوسی رسیده بوده طرفدار چی میشه؟ طرفدار ساسانی یه هم میگه اون فرقه داشت ولی میبینید ته دلش انگار یک سمپاتی خود راوی داره ولی چون که روایت در اصل خودش از دربار ساسانی به واسطه به دست فردوسی رسیده آخرش میگه بعد این فرقه نداشت و نجات نداشت و بهتر شد که رفت و بیناه بخونید قسمت نمیره حالا این تجربه اون این قسمت رو داشتن داستانه استوریه شاهنامه یعنی به وایز اینکه افسانه هست چیز تاریخی بنده قوم شاهنامه رو سه دوره دسته‌بندی می‌کنن دوره اسطوره‌ای، دوره حماسی و دوره تاریخی دوره تاریخی شاهنامه تقریبا از حمله اسکندر شروع میشه بعدش اشکانیام که البته چیزی نیست بیستیک بیست بیست هست فقط اسم چند تا شاهشونو آورده هیچ گزارش و روایتی نیست بیستیک دوره سامانیان به جز نام نش نه در نامه‌ی خسروان دیدم و بعدش هم ساسانیان هست که حجم عظیمی از شاهنامه بود یک سرموم ایلال نصف شاهنامه فقط گزارش های ساسانیان که گرچه روایات ساسانیان هم با حماسه و اسطوره مخلوط شده تو شاهنامه مثلا داستانی کرم هفتوان یه اسطوره هست که نسبت داده شده به عرد شیر و این کرم اینجوری بود یه کرمی شد شای کرمان که هم یه جور ایتیمولوژی غلط برای شهر کرمان درست شده و هم, هم این که یه کرم از توی سیری در یه دختری بهش محبت کرد شد شاه مثلا این مسلمن پستوره میتونه باشه، نه ولی در ولی درکل خط خطوط روایت تاریخ رو دنبال میکنه تو دوره ساسانی ولی باز دوباره همون چی؟ اون ورژن دربار ساسانی رو داره دنبال با شهروراز و شاهین بده شاهنامه شهر شاهرخروز شاهین چون چهروراض شاهین انتبا داشتن به خسرو پریز. چون ما وقتی که تاریخی که مبرخان نوشتن میگن شاهرخروز شاهین دو سردار رشید خسرو پرویز که به خسرو پرویز میگن آقا این ماجرا را ادامه نده این فرسایشی میشه جنگو تموم کنیم سول کنیم الان تو موقعیت دست برتر با ماست ولی وقتی تو شاهنامه میگیم به شاهرخروز شاهین بد میگه به خاطر اینکه ورژن ورژن دربار ساسانی است از حامی شاه حساسانی صحبت کرد به مقصودای امید من که یه در مورد طبرای م... یعنی در صحبتش که گفتی که اون فره که یعنی توشو وجود داشته و به خاطر همین شاه باید حتما از همه خاندان میبوده م... من نبرای در مورد سحاسانی ها صرف میکنم یعنی اولی جای یه مزلح که ایرانیان قدیم سمیستر یا خوهر بردر ازدواج میکردن و خواهم به حاطقی که این خون نباید آلوده میشده با باید یک در تنگیس آسانیان صرف میکنه بله خیالتونی اول این مسئله یکی ای فروید و اینا هم به این مسائل پردردن که دیگه مثل عشق و ازدواج به این و برادر در یک کسی در یک زمانی پیش از این تابو او نبوده؟ بل. و انجام می‌شده در تمام اقوام تا یه دوره انجام می‌شده بعد یواش یواش به صورت تابو در میاد و این قوم کنارش میذاره. بعد اون قوم کنارش میذاره. بعد این قوم بعد اون قوم کنارش میذاره می و قوم ایرانی هم یه روز این رو کنار گذاشت من خودم شخصا فکر می کنم قوم ایرانی تا قبل از درخور با مسیحیان این موضوع براش تابو نبوده یعنی تا دوره اشکالی براش این موضوع براش تابو نه بوده. و توصیه دینی هم بوده و هدف اصلی سراغت هدف اصلی از این توصیه دینی چی بوده؟ حفظ خون بوده حفظ ثروت خانواده بوده ولی این حواجه هم هست خوه دو ده که فکر کنید هم همون یعنی دوده یعنی دودمان خود شاید بشه کنجوری چیزش کرد این همین ازدواج ازدواجی در خانواده و به نظر میریم تو چون توی دین مسیح اول یه رو رو باید در نظر میدیم دایره محارم توی هر دین و قوم و فرقی فرق فرمو کنه ممکنه توی, توی مثلا دین مسیح دخترمون، پسرمون جزء محارم برسانیه در حرمت داره ازدواج با دختر خاله خودش یا دخترمون خودش تو دین مسیح حق نداره ازدواج کنه این ها دایره مهارم. تو دین اسلام خیلی هم خوبه هیش هم چیز نگوشاد مستحب هم باشه مثلا و توی دین مثلا یهود ممکنه دایی جزء دایره محارم به حساب نیاد ولی عمو جزء دایره محارم به حساب بیاد. اون دین یهود اسیلا نه حالا چیزی که با فرهنگ رسی شده باشه و این کار انجام بدن یا برد تو دین زرکشتی هم ظاهرا تنها مورد ای که این به عنوان محارم هست و خورمت داره، مادر و پسر و نسبت پدر و دختر و خوهر و خورمت وجود نداشته ولی احتمالاً با برخورد با اش تو دوره عشق دین مسیحی هست با برخورد با مسیحی یعنی یا یه هماش عرف جامعه به سمت این خورمت پیش رفته چرا من میگیم عرف جامعه بیزن؟ یه وقت ما یه قانون نوشته شده داریم ولی در عمل اجراش باید ببینیم کجاست این که رو دیواری شهر همش نوشته داشه نماز بخونید نماز بخونید نماز, بخونی، نماز ستون دینه، وای برد فلان که... یعنی چی؟ یعنی مردم نماز, نماز, نماز, نماز, نماز اگر همه نماز نمیخوندن اصلا به ذهن اون حتی روحانیان هم نمیرسید که همچین چیز رو انقدر روش بزنه ما این که توی کتاب های پهلوی میبینید انقدر اشاره شده خوبه دوده، خوبه دوده اصلا هستی که توی را افنامه میگه این توی دوزخ دیدمش گفتم چرا داری اینو میگه این رو می خاطر خوبه دده رو ترک کرده خب معلومه که مردم شروع کردن به صورت عرفی خوبه دده رو ترک کردن و این سنت دینی میخواد این رو همچنان زنده نگه داره یه یعنی شروع کنار گذاشته شدنش رو ما درمی‌بینیم اما در خانواده شاهی بس فرق می‌کنه خانواده شاهی این به نفشه چرا چون خون وقتی که حفظ بشه در واقع ثروت و قدرت هم افس میشه تا اینکه بره با فلان آقا که نمیدونم حاکم خراسان هست ازدواج کنه بعد این حالا بشه برادر زن شاه و اون بشه نمیدونم دایی شاه فردا و بعد اینا برای خودشون اعتباری به هم بزنن و بخوان یه لابی درست کنن و دقیقا این موضوع هست و خانواده به بنرشه که هیچ کسی رو با خودش شریک نکنه در این قدرت و ثروت بنابراین این سنت بین خانقادش هایی دیرتر رحاق شده بین از تو بدنه جامعه خیلی زودتر رحاق شده که این کار رو انجام بدهیم وای بر کسانی که انجام ندن و میشه نیمت بایتون بده خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی نیمت من به شما بدم سفیه چند بود؟ 3334 بود؟ 谢谢 جای ندارد دم آتش تیز پای. درخش مرا چون ببیند از دور دلش ماتم آرد به بهنگام از ازا میگیره تو دلش این که بوش هست چو ماننده سام جنگی نبود ببخش چون ماننده سام جنگی بود این رو باید یه جورایی متصل المعانی بخونیمش دلی رو خوشیوار و سنگی بود بدین تیزی اندر نیابت بجنگ مگر نه اینکه گجدم پیر توی نامش گفته که چی تو گویی که سام سوار است و بس اناندار چون اون ندیده است که اثر سوار چون اون, چون اون کسی تالا ندیده تو گویی که سام سوار است و بس حالا اینم طبق اون نامه گجدمی که اینجا چیز شده پیوست شده به نامه کرد گرینا بخون بخون گجدم چی نوشته داره بررسی رسم اون یه چ ماننده سام جنگی بود و خود رستم هم اینجا گفت کماننده صف سخ... نگاه کن روبرو بیت 325 رستم هم فهمید که کماننده سام گرد از مهان سواری پدید آمدن در جهان یعنی خود رستم هم آدرس دادن در, در, در خونه خودش رو حس کرده که این انگاری از نژاد خودشونه و حالا من باز دوباره الان هم باز دوباره توی گفتگوهاش معلومه که داره نقدر اکیش میده این موضوع که انگاری از نجات خودمون میگه اگر واقعا شبیه ما باشه شبیه پدر من باشه بدین تیزی اندر نیاید بچنگ خیلی با کتانت عمل میکنه خیلی براش سرعت مهمیز کیفیت برش مهمه بدین تیزی اندر به این طریقی هم نمیاد که حالا بود بره پای تخت رو مثل صدام که میگن گفته بود. راست گفته بوده. اینشالله مصاحبه بعدی رو ما تو تهران خواهیم داشت بدیم فیزیاندن نیاید بجنید نباید گرفتن چون این کار تایید نباید خیلی هم این مسئله رو بزرگش کنیم و خیلی مدت به خشخاش بذارم و سخت بگیریم بر خودمون به می دست بردن و این ما میفهمیم یه خودا که برمی جفتن میفهمیم که این م نمی این نمیگفتن خود توی مصنوی هم که مال مولوی در هفت هجری هست اونم از رو بافیهاش می‌فهمید که اونم می گفته مهن و این بایجه در عوستا وجود داره به صورت مزو که از ریشه مده هست به بندی مصد شدن و ریشه داریم که عوستا بیراشل هست مده این رو برید دگاه پیراشل ریشه مده صورت دیگرش میتونه مز. این ز ز ریزهی ای میست این میتونیم با داردزار شمیش بگیم مد این ده این رو که زبان میشه بیشه مد یا مذ، یعنی مست شدن خب، مزیدن و مثل میشه؟ دیروز ما داشتیم اینجا بیسترق میخوندیم میگفت مزیدن مز. مز. می. یعنی مست یا مزیدن که شده مچیدن و آنی خوردن که به این وقت بداخل مزه و اینا اون با مزه است نمیدونم شاید مزه هم این باشه شاید نمیدونم چرا, چرا شون یه دفعه نظر دادنش خیلی سخته مگر اینکه آنها واقعا توی یه فرهنگ محتمل میدونیده باشه حالا این به نظر مثل مزهو یک روشیدنی الکولی بوده که هندو اروپاییان چون ما توی انگلیسی هم داریم چیه توی انگلیسی با شبیه مذهوع؟ هرونیشه هستن با مذهوع این ها از این ریشه توی عوستانی خدای مطمئن نیستم مذهع هست یا مذهوعه؟ مستان تو سانسکریت داریم مدهو و تو سانسکریت آفرد داریم مدهو مدهو خب تو انگلیسی چی داریم؟ بگو شما که انگلیسی خوبه کمیتونه تو بگه؟ تو انگلیسی هم داریم اصلا؟ نه, نه نه نه، یه نوع شراب میگه چی؟ میت میت داری، این همش یه واجه اصلی هندو رو پایی هست همون همش، همون ملید. حالا اصلا، به نظر ریسی یه این واجه ریشه قدیمی اندورپایی داره دیگه موقعی که اندورپایی ها با همینی که زندگی میکردن رو رو بسیبری تا چهار هزاره، هشهز میلاد یک ماده ای داشتن که بهش بیادن روزن میدیم می می اصلا، می میدیم اصلا، میدیم یه چیزی، مادر این واجه ها مادر این واجه ها، بله، با می هم ریشه می میده این گریسی خب؟ همون! همون! تو سنسکیت اصل میده کاملا درسته نگاه کنی این روش بررسی شده دکتر جلال خاله محترم این مقاله داره درباره نستی؟ و شراب و فلا میگنم اه... یه جا روی سرکاراتی توی از مقالاتش یه چیزایی می میگه نگاه کنی هندو و اروپاییانی که توی سیبری حالا هی میگن هندو اروپایی ها از سیبری نیمانه هی او از سیبری بابا شواهدش مندی اروپایی هایی که از سی... تو سیبری زندگی تو سیبری انقدر دمای هوا پایین بوده که درخت انگوری اصلا سبز نمیشه که بشه شراب انگوری بگیری هر قومی شرابش رو بر اساس اون امکانات بومی خودش درست می‌کرد محصولات بومی خودش تو سیبری عسل ولی بوده و اینا اصل رو اول با آب مخلوط می‌کردن یه چیزی از لحاظ شیرینیش شبیه آب انگور درست می‌کردن و می‌ذاشتن تخمیر بشه این شرابی بود، اتفاقا شرابی بوده که از آب اثر گرفته می‌شده مخلوط کردن آب و اصل و تخمیر کردنش توی سرزمین‌هایی که چیزای شیرین بوده مثلا توی کمروند معتدل که درخت انگور بوده از آب انگور که می‌گه رایز‌ترین شیوه‌ی درست کردن مشروبات آب انگور رو می‌ذاشتن تخمیر بشه توی سرزمین‌هایی که اصلا انگوری نبوده حالا مثل آمریکا جنوبی در تو آمریکا جنوبی انگولشون کجا بوده. پسا قبل از کشف بارره آمریکا که این محصول وارد اونجا نشده بوده تو آمریکای جنوبی از ذرت و سیب زمینی مشروب درست. اون چه جوری بگه ذوررت سیب زمینی می شود مشروب درست کنیم اول جاستش و توی پروسه تبدیل به قند میکردن خود آبجو ها هم همینطوره اول توی پروسه نشاسش تبدیل به قند و بعد ق و تبدی به الکل یعنی دو مرحله ای اون فراسته دیگه حالا دیگه این حالا معی رو داری شدامتش دست بگیشم برد به معی دست بردن دو مست الان خود واژه مست خود واژه مست هم از ریشه مد یا مز عوستایه باید با می هم ریشه هست در اصل خودش واژه مست به معی دست بردن دو مستان شدن زیاد سپه بد باید فکر کنی دیگه سه سپه بد ولی اگر بخوایم خانه قدیمی تو پهلوی میگه سپاه بد موبد پس اینو بعد بخویم سپه بد اگه بخوام خانه قدیمیه آنچنان توی این دوره میگیم سپه بد یا میگیم موبد دیگه هر کدومش جوری شده به یاد زیاد سپه بد به دستار خیلی جاها تو رو به خود کارگوس میگه سپه بد چونم حالا اول مستی به یاد افراد بزرگ رو میگه احتمالاً یاد کاووس. دستان که پدر لرستان یعنی اولی گفتن به سلامتی کاووس شو بعدی گفتن به سلامتی چیز؟ دستان. دستان. دستان. دستان. دستان. دستان. دستان. دستان. دستان حالا این حالا این نوشی که موقع مست ش... شراب الان تو ارمنستان ارمنستان فراموش نکنید شدیدا بعد تاثیر فرهنگ اشگالی هنوز هنوز های عجیب غریب پهلوی اشکانی توی مثلا تو، توی ارمنستان به میدونی که ماشین دورش دور می‌زنه میدون امروزی میگن اسپرس اسپرس یعنی میدان اسفراوانی خب حالا تو ارمنستان به موقع شرابخوردن خوردن میگن انوش توی ایران میگن چی نوش هر دوی اینها از چی گرفته شده بعد انوشی روان انوش روان در واقع ان نفی به اضافه یعنی مرگ ان آوشا بوده که صورت انوش در او انوش روان یعنی روانش بیمرگه ولی همینطور موقعی شنافاری یعنی بیمرگ باشی مثل مثلا زنده باشی بیمرگ میشه انوش ان آوشا یعنی بیمرگ باشی بعد انعاشایی شده انوش بعد عیش افتاده شده نوش ما عی آغازین سیاری از بسیاری از کناراتونی افتاده و این حوش واژه حوش از همین عاشا به منی مرد من واجه حوش در شاهنامه به منی مرد من زیاد بکار رفته یعنی واقعا زیاده کار رفته ها مثلا همین صحراب یه جایی میخواد درستم مسخره همونطور که رستم و می ده. مسخره میکن میگه تو درند دوشی میده سهراب هم رستمو مزقره میکنه میگه تو خیلی دیگه پیری <تصفيق> <تصفيق> میگه تو, آ... تو را بهتران بود که در بسترت بستر بهتر آیت شاید تو را بهتر آیت که در بسترت بر آیت به هنگام هوش از برد این هوش به من جان و مرگ و اینا میگه بهتر بود که تو بستر میموردی دیگه نمیومدی جنگ خیلی. یه جایی دیگه باز دوباره درباره اسفندیار پدرش ویشتاس از جاماست که وزیر پیشگوش هست میپرسه میگه این جونش مرگش میگه ورا در جهان خوش بر دست کیست؟ میگه مرگش به دست کیه؟ کزم در ما را بباید؟ ورا خوش در زابلستان ببند به دست تهمپور دستان ببند پس حوش ببنیم من اعوشه بود این اینا حالا بیاد سپه بود به دستان شدند دگر روز شبگیر هم بر خمار بیامد تمتن برا راست کار اصلا یه چیزی هم بهتون ما زیاد شراب خوردنم از آین پهلوانان بوده البته اینجا دیگه به در واقع محجم زیاد شراب توی بعده اشاره نکرده ولی به یه دوره طولانی از خوردن شراب هم چند روز سر هم اشاره میکنه جای دیگه هست میگه بیا یک جام می میگوسار که کشتی بکردی بروبرزه اینم حالا از لحاظ این, لازم. این از نشانه های پهلوانی بوده که ظرفیتش بالا باشه و زیاد بخوره کجا بود صدیگر سهرگند بله دگر روز شبگیر، گیر هم برخمار میام attendant برا راسکار یعنی روز بعدی خب رستم اول گفت چه کار کنیم یه روز بشینیم شراب بخوریم نگاه کنید، بباشیم یک روز دم برزنین یکی, یکی برنده خشک نمبرزنید یه روز بمونید اوزان پس گراهی بعدش بریم پیشش ولی حالا یه روزه رو که شراب خوردن و به یاد سپه به دستان شدن و مستان شدند و اله کردن و بله کردن دگر روز، روز دوم، روز دیگر دگر روز شبگیر، شبگیر یعنی چی؟ سهرگاه شرابی که صبح میخوردن بهش چی سبوهی. سبوهی بله <تصح> توی شعر حافظ که زیاد زیاد تا دلتون نخواهد سبوهی بعضی مزورت سبوهی از سبوه، از سبوه، یا از ها این شعر عربی حافظه به شرابی که شب میخوردن چی می‌گفتن؟ ببو. به اونم یکتنم او عربی درود حالا این رسته میخواد چیکار کنه؟ میخواد زد یه جایی میگه حافظ میگه سبوهی زده اومد و فلان و اینا سرده میشه؟ نداری؟ م... من همون که چون حافظا میگه آنظرم وقت میگه وقت وقت وقت وقت وقت شد گرده تزباره خب. خوردن تو روزو روز رو مرد میکنه از لابودی می به اون معلومی گرفته و صبحی فقط چیزیه که س... صبح حالا می صبح ریشه پهلوی یا؟ نه توی مثلا میکنه بسرق میکنه بسرق یه چیز فارسی دوست. یا پهلوی داره ببینیم می صبح نه نه دیگه روز شبگیر هم بر خمار بیامد آمد تهمتن بر آن راست کار صبح سهر، حالا اینایی بکنید تا دونسه به شب داشتن می خوردن هنوز سینی چیپس و پاپکشو نه اینجا واقعا لحظه شو بود همونجا جا نفتن خوابی دارم بعد صبح دیگه خمار دیگه بامداد خمار بود کیف چشار شو مانید دید داره دارم دوباره چیپس جدید میاره میوانه جدید آورده حالا کیف هم دومانش دو جارب نمیکرد بعدا دفتر شد پدرشو درمی آورد دیگه شکار دو دارم گروه درم دوباره میرزم پایشو زمستی همان روز بازی استاد دوم روز رفتن زمستی همان روز بازی استاد دوم روز رفتن شد بله بالاخره شروع کرد برا راستکار کار مستی هم بالاخره یه موقع متوقف شد اما باز روز دوم حرفی از رفتن زده نشد سه دیگر سه دیگر عدد ترتیبی سوم تو پهلوی هم داریم به اول میگفتن نخست یا میگفتن فرادوم به دوم میگفتن دو دیگر به سوم میگفتن سه دیگر سه دیگر سهرگه بیاورد می کی بیاورد می؟ <تصفح> از صبح شروع میکرد ها سه دیگر سهرگه بیاورد می سرگاه رستم دوباره هم خشخش <تصفح> چیپس هاوینا رو انده می؟ بورا اشتباه از قطع اینجا <متصف> ورا یعنی ویرا این که دیگه چیز نیست که ورا رو بخونیم او بخونیم بگیم اورا یا بورا نه نه آمد وی را مگر که بگیم این مخفف اورا باشه که من به نظر نمی نه نه آمد ویرا یا کابوس کی یعنی وی کیر هستن هستن اصلا عین خیالش هم قرار کابوس این همه فورس ماژور گذاشته بود برو فیدانه، بعضی وضعیت قرمزه، باید فرم کنیم از این طرف رستم در لالا لالالالالا روز سفمم لال لال لال رفت آورد حالا دگاه کنید گیف دیگه بیچاره روش نمیشه به رستم چیزی بگه روز چهارم مثلا اگه هر روز صبح رستم ساعت هفته صبح شروع می کرد به بسات پنگ کرد. امروز رو... گیف ساعت پنج و نیم صبح به روز چهارم برا راست این دفعه راستم خواب بود دید که گیف با... داره صدای زیب زیپه واسه از ساکش سر راستم اومد راستم پاید با چیکار داری میکنی؟ خب داره برا راست دیب. یعنی آماده شد آراسته شد چون این گفت با گرده سالار نیف گرده سالار نیف او چه خبره گرد یعنی چی؟ پحلان. سالار های سردار تو صورت دیگر تلفظ سران نیو نعیبا داریم توی فارسی با حسابه، معنی نیک که توی پهلوی و صورت نیک داریم، نبیدان از کجایی به دست فردوسی تو فارسی آغاز فارسی دری و فارسی نور رسیده به صورت نیو که همون با نیک و نعیبا و اینام، تو شاهنامه نیو به معنی پهلوان بکاریم، ولی ازش یعنی نیک نعیبا فارسی با اصلا داروش میگه این سرزمین فارس مردان نیک و اسبان نیک داره نعی باهی صفت این میگه نعی با نعی با. از پارسی ها ما نمیم. بله از یه چیز دیگه ای اومده پارسی که هم... ما دعایی مگشته برکان ببنی پهلبان ببنی پهلبان بب چون این گفت با گرد سالار نیو حالا به روز چهاران مرا راستگیم خب پس هم رستم یه دفعه از جا پریده دیده صدای زیپه سالک میان روزم ایچ چون این گفت با گرد سالار که تند تندست و حشیار نیست چون این داستان بر دلش خار نیست کابوس احساب مساب نداره، اخلاق مخلاق نداره آدم تندخویه میگیم تند و تیزا اگرچه باده فرح بخشو با گل بیز است به باغچه چنگ نخور می که محتسب تیز است یعنی تند و تیز یعنی خشگیر اینم کابوز تنده کاووس تنداستو پشیار نیست چون این داستان بر دلش خار نیست این اتفاق... همین داستان ببخشید همین داستان بر دلش خار این این داستان این اتفاقی که پیش اومده برای کاووس ساده نیست به دل خودش ساده نگرفت ساده برگزارش نکرده تو ذهن خودش غمی بود از این کار و دل پر شتاب از این اتفاقی که افتاده، یعنی حمله صحرا، غمگیم بود، دل پر شتاب تو دل درشت چی بود؟ شتاب و نارامی بود شده دور از او خرد و آرام و خواب، نه خواب داشت نه خوراک می‌گوان نه خواب داشت نه خوراک، اون زمان بوده اصلا نیازی نیست بگیم زبرون مثلا چون به صورت طبیعی، جز یکی از واکنش های استرسی همه پیش و بی ازابل ستان گرد رنگاوری زمین باز پیکار و جنگاوری ای بیجاله، ای بیجاله. این جاله این واژه که ما میگیم زمین از یکی از بویش های دیگر ایرانی وارد فارسی نو شده وگرنه در پخلوی چی بوده؟ زمین چی بوده هماس زمین یعنی زمین به چه شک بوده اینجوری خب، این خسته. زمین بوده و مسلما تحولش به فارسی جدید میشه چی؟, چی؟ این زمید. مفته میشه زمین، نمیشه زمین. پس این از یه بویش دیگر ایرانی اومده. بله، توی اوستاد این زما یعنی زمین. بعد این زما رفته توی فارسی میانه شده زمین که توی چیز دیگه توی بویش دیگه ایرانی، زبان دیگه ایرانی شده چی؟ زمین و ما زمین رو توش آهرام به عنوان تحوال خود زمین که داریم تو زبان من زمینم به زمین هست در کجا؟ تو زبان من جالبه؟ تو زمین یه زمین، آره؟ روسی خمونده. آره، روسی شنیده بودم. تو روسی هم زمین به من یه زمین هست حالا، واژه زمستان هم از همین میشه زمستان شما چی میگی یه چیز دیگه میگین؟ یه چی؟ جی؟ جیما به میگه جیما پس اون همینه چون جی و زه همین چیزی که خیلی جالبه ها پس زمستان و زمینشون مثل زمستان و داره یک فرامه بود همه هم اونا خیلی شد خیلی جالبه خیلی ممنونه به زابولستان گردرنگ آوریم زمین باز پیکار و جنگ آوریم یعنی زمین را به سوی پیکار و جنگ ما. به دو گفت یعنی جنگ جهانی را میفته جهانیه منظورش نه فقط یه تیک زمین ها. جهان، زمین حالا اون که کربی نگاه نمی کرده کلان زمین گیتی رو به فرمود تارخش را زین کنه آها ببخشیم به دو گفت رستم که من دیش از این نگاه کنید توی شاهنامه هر جا به واژه اندیشه برمیخوریم و اندیشیدن و اندیشه و یک درسته توش فکر کردنست ولی یک حس نگرانی و تشویش و خاطری هم توش هست اینجا هم یعنی نگران نباش، یعنی فکر برد نکن ولی وقتی که به قرن هفتم می میرسیم مولوی میگه چی؟ ای برانستان همه ای, برد. ای برد. انیشه یعنی اندیشه یعنی تفکر یکی از چیزهایی که تو تحقیقات ما جاش خالیه خالیه خالیه خالیه ولی حالا درسته ما تنبریم با اومدن سیدی درج و سایت نمیدونم چیه این سایت گنجور جنج. که توش شعرها اینا میشه سرچ کرد کار خیلی ساده تر شکن یعنی 500 برابر ساده تر از گذشته من دورم 20 سال پیش شده که اینا قابلیت سرش داشت. اینه که پایان نامه های رشته ادبیات فارسی من اینو به استادام هم گفتم من هیچ کدوم گوش نکردم نگاه کنین شما یه نوع فرنگ های هست وقتی باز میکنی میگه این کلمه برای نخستین بار ما توی قرن 16 هم تو آثار نیام چی چی دیدیم که اینو به معنی فلان به کار برد بعد تو قرن 17 نمیدونم جک نمیدونم چی چی این رو توی روزنامه فلان و عمار فلان برد بعد رسید شد این یعنی استیل تعامل واژه از قیصر پیدا شده و حالا پایو نامه های رشته های ادبیات فارسی حتی زبان شناسی به چیزهای علکی میگذره فقط یه چیزی نوشته میشه الان همه موضوعات کار شده موضوع نداریم چی چی کار کنیم ولی یه کار درص حسابی که همین کاری که انجام نشده تو زبان فارسی چند تا واژه واقعا سیرش کار شده که از کی ما زمین وارده شعر فارسی شده زمین نبوده زمین بوده از کی نمیدونم واژه زخم به معنی جراحت وا استفاده شده نه به معنی ضربه چون تو شاهنامه زخماش معمولا یعنی ضربه از کی ای ریش به معنی نمیدونم جر... جر... چیزه شده این ریشه نشده اون ز... به معنی زخم تو تو شاهنامه وقتی میگه ریش یعنی جراحت وقتی میگه زخم یعنی ضربه کی بوده عوض شده کی بوده جا به جا شده اندیشه واژه اندیشه کی به معنی نگرانی بوده بعد کی شده تفکر به دو رستم که مندیشه نگران نگرانمش که با ما نشورد کسن در زمین کسی با ما در واقع چی؟ پرخاش شعوریدن این پرخاش کسی با من ما یعنی ما نمیتونه پرخاش کنه اون از کابوس ترسوندش گفت گلش کن با ما هیش کس نمیتونه بفرمو تا رخش را زین کنن دستور داد که غلاما رو چاکره ها پس رو, رو کنه. از رخشش رو زین دمن در دم نای رو کننده. این دمن در دمن نای رویین بکنن و نای بزنن و این ها ظاهرن یعنی جنگی بوده یعنی بوق جنگی بوده که بازی جمع شدن سپاه شده. سواران ز... اینا سواران زابل شنیدند نای برفتند با ترگ و جوشن زجایی حتما یک پیام هایی وجود داشته مثلا وقتی که به دیگه نوخواسی زده شده یعنی نشکر رو جمع میخواهم کنیم باشیم بریم یه جوری دیگه زنده میشده از هست، یه جوری دیگه زنده میشده عروسیه متاسفانه یه چیزی هم بهتون بگم ما میگیم استاد شجریان، موسیقی سنتی، بیات، ماهور، اسفحان، خلان اینا روش کار شده، روش زحمت کشیده شده، یه متولیان قابلی داره الان تو کشور ما ولی یه چیزی از کف تقریبا رفته و اون موسیقیه سنتی تر از این موسیقی سنتی، اون موسیقی سازناغاره مونه دیگاه کنی، ما دو نوع هنر سنتی داریم یه هنر سنتی درباری داریم مثل موسیقی همین بها، چیز همین گوشه ها و مقام سنتی، چی بهش میگه، دستگاه های، ماهور و شور و فلانا یه موسیقی سنتی، آره، دیگاه این, م... این موسیقی فاخر درباری سنتی ایران هست و یه مستقی خیلی پریمیتیفتر هم داریم و اون ساز و ناغاره و سرنا و دهول و شما اگه یه خورده از فضای شهرهای دوران قاجار. قاجر برید تو روستاها سنتور که کسی تو روستا نمیزده که کسی ستار که میمیزده توی روستا چی چی میزدن؟ ساز و و سازم خودش یه چیز بوده یه نوع... حالا از این خانواده بادی. دم، آله بادی بوده ساز و نواره و سرنا و دوهن تو تمام ایران همین بوده چند جام بده؟ اینا بعضی یا توی فضایی موسیقیه و محلی رو نداره همه اینا قدیمی بلکره تار و تنبور و تنبورم الاتی میاد تو ای حوزه اونم الاتی بیشتر تو غرب کشور ولی تار ستار، سنتور، تنبک، اینا فضایش این مقدار فضای متمدن درباری شهری مثل دو نوع مثل خالی های کاشان و کرمان و اینها با اون نقش های اسلیمی و اینها این یه هنر سنتی ولی در این حال فاخر و درباری و قاجاریه ولی از اون هم های قشقایی رو نگاه کنید گبه رو نگاه کنید جیمار اینم این یه هنر سنتی ولی روستاییه یعنی منظورم اون موسیقی روستایی ما اون سنتی خالص ما عروسی ثبت و زرق نشده که کسی بدونه که حالا مثلا توی عزاد چینو ناقاره می‌زدن جلوسساز ناقاره می‌زدن تو عروسی جلوسساز ناقاره میزد. اینجوری متاسفانه تو تزیه ها من بچه بودم یادم اطراف شیراز تزیه که ما میرفتیم ساز ناقاره می‌زدن ولی ساز ناقاره اول تزیه به آخر تزیه پر. ساز ناقاره ای که تو تزیه می‌زدن با ساز که تو عروسی میزن موقع چوبازی فرق میکرد اون یه چیز دیگه ای می خودش میدونه چون نسلن درنس هزاران سال بهش یاد دادن سازناقاره شاد اینه سازناقاره قبی نیده ولی ما همش میگیم سازناقاره اینطور چه کار کردیم؟ بفرمون تا را زیم کنن دمند در دم نای رویم کنند. سواران زاول شنیدند نای برفتند با ترگ و جوشن زجار در واقع حکم پیامک اومدن امروز روز داشته پیامک اومد، بهشون تماس گرفتش و اینا شدن. از پرلوزم بچه شون به رزمشون باشه اومدن توی میدان جمع شدن که حرکت کنن گرازان بله از دوستان که میخونن برامون آقای فرازی بخونیم گرازان به درگاه شاه آمدن و دل و نیک آمدند چو رفتم دو بردند پیشش نماز برا شفت و پاسخ نداییچ باز یکی بام برزد بگی و از نخست شرم از دو دیده بشست کرستم که, که باشد که فرمان من کند سست و پیچد زد پیمان من بگیرش ببر زنده بردار کن وزو نیز با من مگردان زه زگفتار او گیر را دل بخست که بردی برستم برامونه درس. برا با گیب و با پیل تن پرومان خیله همه انجمن بفرمو پس توس را شهریان که رو هر دو را زنده برکن به دا خود از جاوی برخواست کاوت کاووز که بر سام آتش زنیم به شد توس و دسته تهمتن گرفت به دومانده پرخاش جویان شگفت که از پیش کاووس بیرون برد نگرد آن تیزی افسون برد تهمتن برا با شهریاد که چندین مدار در کنار همه کارت از یک دیار بدتر است تو را شهریاری در خرست تو سهراب را زنده بردار کن تراشوب و, ب... و بدخواب را خار کن بزدتون یک دست بر دست توس تو گفتی زپیل جیان یافت کوس زبالا نگونم درآمد به سر برو کرد رستم به تندی گذر به در شد به خشم آمد برخش. من به منم گفت شیره او جمه تا آج بخش شخصش رو اون دردت کنیم یعنی خورامان یعنی با ناز هر جمه گورا دستش داریم یه فیلم به دنگاه شاه ها آمدند گشاد دل و نیکاه در واقع یعنی با نیت پاد، با دل پاد، گشاده دل و با آرزه‌های خوب اومدن پیش شاید چون رفتند و بردند پیشش نماز؟ ما امروزه میگیم نماز خواندن اصلا نماز چیه؟ نماز خواندن درسته یا نماز بردن درسته؟ یا نماز کردن درسته؟ نه نماز کردن درسته؟ نه نماز خواندن درسته؟, درسته البته خب با مفهوم اسلامی چون در هنگام نماز یه چیزای باید خوانده بشه پیوند خورده و اصل نماز سلام باید. اصل نماز چیه نمیدن نم به نم می نمم. می می نم. یعنی خم می شود یعنی تعظیم کردن خم شده شد. اونجا می نمم می نمی می نمم می نمی, می, نمی. نمی. تعظیم می کنم تعظیم می کنم نماز از اینه این فخلابی هم هست کتی کتیبه شاپور سکانشا یا سلوک که در کاخ در تخت جمشید اومده خیلی جالب یه هزوارش داریم یه هزوارش داریم به ایستشه که این را خوندنش نماز که این هزوارش رو خودش سجده دیگه من اومدم اینجا نماز بردم از اسب پیاده شد بر نت زمین نهرو خب این نماز پس قدی حالا نماز بردن هست یعنی چی این تعظیم بردن یعنی تعظیم را تقدیم کردن یعنی تعظیم را به پیش بردن که در مقابل حالا بزرگان خدایا فلان اینها همیشه هم یک عمل مذهبی نبوده پیش از اسلام این تنخمد شده تعظیم حالا در شما در بحث تصوف مثلا اولویت داشته باشه میخواد شاهی داشته باشه چرا رفتن دو بردن پیشش نماز برا شفت و پاسخ نداد، هیچ باز دگاه کن این دود فکر نکنید میتونست بگه هیچ باز نه وزنی به هم میخورد و نه وافیهی به هم میخورد این توی پهلوی هیچ چی هست توی پهلوی هیچ اج هست یعنی هیچی که ما الان استفاده از یه لحجه چیز اومده تو فارسی بله خب لهجه خوراسانی توی پارسی نو بیشتر تاثیر پهلوی اینه اچ که مسلما وقتی بیخوایم تحولشو حساب کنه میشه ایچ این میتونست باشه ولی حتما لهجه خوراسانی چیزی توش تاثیر کنش و شده چی؟ گرچه حالا چ س ن زاده خوراسانه و داره ایچ رو بکار میبره از کجا ایچ ومده انا همش سؤالاتی که میشه روش کار کرد حتی تو رشته فرهنگ و زبانهای باس میش کار کرد که توی دو، مثلا فارسی آغازین، فارسی دری سه چهار قرن اول اجری چی شده که زمین نشده و زمین شده چی شده که هیچ جانه افتاده و هیچ شده، هیچ هیچ از کجا پس خونه خب؟ نه، برای شست و پاسخ ندادی ایچ باز یکی بانگ بز زد به گیب از نخست، اینکه مشخصه یعنی از ابتدای دادی زد سر گیب آهای فلام پسندا شرم از ددیده بشوش در شرم از ددیده بشوش یعنی چی یعنی شرم رو کنار بذار خستنی وقتی ما یه چیزی رو می‌شوریم اون رو چیکارش میکنیم از بینش می‌بری دست من کسی رو میشورم، باز اون کثیفی از بین میره حالا شرم رو میشوره. یعنی شرم رو چکار کنه کنار. کنار میزنه از بین میبره از چشمش چرا شرم پوچره قابو اسپایر دست پدرستم شرم داشته باشه چون دوباره نصف کابوس نجات داده خب اینو گفتم خدمتتون یه بارش هاما بران بود یه بارش مازدنان بود یه بارش هم وقتی کابوس افتاد آره توی اون بیشه رستم و گیب و گودرز و یه گروهی رفتن نجاتش دادن که رستم هم نقش داشت توی نجات یافتن کابوس که که باشد که فرمان من کند سست و پیچ از پیمان من رستم کیه که بخواد فرمان منو رو بگیره مگه از اینجا تا زابل چقدر را است ؟ از اینجا تا زابل سه روز سه روز هم برگه شیش روز چرا مثلا ده روز اومدید؟ همینه دیگه چهار روز راستم لنگ کرده کارو رو دیگه، که رستم که باشم که فرمان من کند سست و پیچ از پیمان من بگیرش، ببر زنده بردار کن نسخه مسکو بگیر میگه بگیرو ببر زنده بردار کن نمیدونم میگه؟ ای میگه حالا این نسخه ای میگه بگیرش ببر زنده بردار کن عزونیز با من مگر دونسخم میگه درباره، اونم بحثو برنگردون در درباره راستن بحثی نه تو نیا نی بگیر دیگه برو راستا اون راستن پدرزن دیوگی می جرئت میکنه به دردت سر داد بزنه دیگه تو خونه راست تو خونه گراشت نه دادرس میذارم بعد دادرس میذارم بعد دارش میذارم که خوبه باشه نیست کی جا رد میکن. میگه می‌گی بگیر و ببر زنده بردار کن عضو نیست با من مگرد آنسان میگه در با من اصلا صحبت نکن ولی این رستم ز گفتی‌ها اینا خسته که گفتی به من یه مجروح اینجا ز گفتار او گیر دا دل بخست که بردی بر بران گونه دست خست بخستم بخستی، بخست یعنی مجروح شدم مجرور شدی، مجبور شد حالا بون مزارش چیه؟ اگه بخواه مزارش بسازیم بون مازی, خ... بله. مازی خست، بون مزارش خل چیلی یه خاری به پایی بخلد یعنی در آن پا را مجرور کنند خلیدن بون مزار خل، بون مازی خست ز گفتار او گیف را دل بخست دلش چی شد؟ مجروح تو دل, دل گیب از گفتار کی از گفتار کاؤز که بردی به رسطان، حالا این رو اینجوری معنی کرده که بردی به رسطان با در دل دلیل این که گیب دلش هن شد دلش مجروح شد اینه که آخای کی میتونست به رسطان هم همچی بین احترام میکنه پس گیب ناراچه حالا اگرم این علامت سوال سآل رو برداریم به صورت التضامی در میاد یهزه گفتار او گیو را دل بخست که بردی بهرستم بران گونه دست دلش خون شد که بخواهد برستم برست گونه دست به دست راضی بکنن همش التزامی بگیید براشفت با گی و با پیلتن کی براشفت؟ کابوس براشفت با گی و با پیل, پیل. با و با پیل. فرومان خیره همه ان دست در نمت. هم انجامه این چی؟ جمع، فرو حالا که دیگی مهندش نمیذاره دی، سرشو انداخته پارمین هیچ کاری نمیکنه نه به دوست هم بی نه به کابوس کاری داره و حالا این دفعه چی میکنه؟ به دوتاشو شروع کنه دریبری گفتن گفتم شوق با با فرومان خیره همه تنران بفرمو پس توس را شهریار، جریان دیگه که مصدماً کاگوس. توست چیکاره هست؟ گفتی که توست زردی یک دست ایرانه توست یک شخصیت عقده ای است. علاوه روحی وروانی بسیار بسیار عقده داره. چرا؟ چون بله توست خودش پسر نوزاد شاه بیشتری بود ف عقدهش اتفاقاً نسبت خاندان زاد سلام بکار بود. عقدهش اتفاقاً نسبت خاندان زال هست. که زال نزاشت که بعد از کشته شدن لوزر به دست تورانیان توس و برادر... یا برادرش گستر به پادشاهی خب اینا به صورت طبیعی توقع داشتن خب تو باباشون شاه بوده اینکه پسر شاه توقع داشته باشه به شاهی رزی. چیز خیلی بزرگی نیست شاهزاده بودن ولی زال گفت اینا هیچ کدوم فرده شاهی نمدن حالا آقای چیزم چیزام آقای کاموس هم فهمید که به کی بگه؟ مثل این اقدهیه بگمیم الان اره منتظر فرصده سیزت سا یه اتفاقی یا یه حالی از این خاندان رو سن پس پستوس را شهر یا. که راو هر دو را زنده برکنه دار آره یه وقت واقعا اول طرف رو می بعد دارش می‌داد. مثل الان نبوده که دارش بزنن که بمیره دار المین درخت خب به دار زدن در از خب وسیله ای که بخوان کسی رو دار بزنه درخت بوده برای همین فعل اینجوری شده شده دار زدن یا به دار کشی یا به درخت زدن به درخت کشیدن بعضی اول می میگوشند بعد دارش میزنند مثال از تاریخ بیحقی که تقریبا بااصر فردوسی کمی بعد از فردوسی زندگی می‌کرده بیهقی و مرد خود مرده بود که جلاد رسن به گلو افکنده و خبه کرده اول کشت، سنگ زدن دیگه و مش دیرن راسیم دادن تا سنگ دیگه با سنگ ها کشته شده بود حالا گلا، جلا رسن به گلو اکنده، برای اینه که آویزونش کنه اون بالا بشه یه نمایشی آره شو کامل بشه حالا زگفتار اون گیف را دل بخست که بردی برستم گونه دست که اونگونه بخواد برستم دست رازی کن بخرمون پس توس را شهریار که رو پردو را زنده برکن بداد جفتشون رو دار بزن زنده دار بزن هم سر دار بمیرن خود از جای مانی هم همینطور بود مانی هم وقتی که بردن تو زندان چهنه روز تو زندان توی شرایطی نگرش داشتن که بمیره مستقیم نکشتنش چون می داشت دیدن والا اسوسیابش و بود دیگه مرید داشت بار. یه کاری هم تو زندان بمیره، حالا میگن قضا بهش ندادن چی بوده بعد که مرد اومدن پوستش رو تاکسیدرمی کردن از یه دروازه تا سال‌ها آویزون کردن که اون دروازه اسمش رو بابمانی توی جندی شاپور که وقتی عربها 300 خورده نزدیک به 400 سال بعد بود. اومدن تو جدی شاپور رو فت کرد تا چند سر سال هم که عربا بودن تو جدی شاپور به این دروازه هم مثلا دروازه شرمون دروازه فلا گفتن با به مانی این آبیزون کردن بعد از کشتن بوده حالا بشد توز خ... آها بفرمونت از توس را شهری ها هر... که رو برو هر دو را زنده برکن کن به نظر میرسه که اینجا توس هم یک کمی تعلل کرده یعنی تا کاموس کن تو توس هم یه دو سه ثانیه داشته موقعیت رو میسنجیده چرا که چی باعث شد که خود از جای برخواست کابوس کی، کابوس کهی باید بگیم البته بر برسان آتش زنعی. خود از جای نهی که بابا خود چیزا میگه نهی خود هم میگه نهی این نهی بوده وز شده خب در واژه واجه کابوس م... اینجا موقعیت خیلی خوبیه که تو موطور پهلوی کابوس به چه شکل هست؟ کابوسه. اوپس کابوس. کایوس. پس کایوس حالا چرا توی شاهنامه میگه کابوس کی یا کی کابوس؟ اول که اینا کیی که اولشونه ها. این همون لقب شاهان شهر ایران بوده کمی کوبا یعنی کی کبی او سزنه. این توی عوستان کبی او سزنه، یعنی که کابوس حالا چرا شده؟ خب، کیوس میاد ای کی پیشوندشه، ای اوز هم اسمشه، که اون مخفف او سزنه ای عوستاییه میشه کابوس و چی میشه که کابوس میشه که کابوس؟ این لقب کی آنقدر در این ادغام شده به صورت کلیوسی و کابوس در مرده که یادشون میره که آقا ای کیو این, این کی بهش چسب بوده یه یک دیگه همش میشد یعنی میشه کی کی اوز در واقع کی کی <تصفيق> نه نمیفهمیدن که این کیش استفاده شده ما کی پشیم داریم، کی بیارش داریم، کی فلان داریم تو اونا میفهمیدن که کیش استفاده شده کی بیشتاست داریم، کی ارجاست که دشمنی دین زرتشتی هست ولی توی این کیمه احساس میکردن سلام، بفرموید، خواهی شما بفرموید، شما این احساس کردن که هیچ کی استفاده در شده خب؟ شیش دقیقه دیگه خود از جای برخاست کابوس کی برف رو برسان آتش زنید نگاه کنید ما چون که این تو این دوران داریم زندگی می‌کنیم ارتباطمون با طبیعت قطع شده یعنی خیلی از مثال‌ها و تصویر‌ها دیگه شاهنامه برای ما بیزنه مفهوم نیست ملموس نیست ما مثلا بچگی نکردیم که بریم توی نیزاری آتش بزنیم نیزار رو آتش بزنیم چه آتش ولی اون که میده یک شبه در نیستانی فتاد سوختونش که بر جانی فتاد به نظر مثل آتیشی که به جون می افتاده و آتیش یهو چی میشده؟ یک صحنه خیلی دلخراش و بخشش و یاشای ناگمانی به وجود میفتاده که این، اینجا آورده ازش مثال اگر با طبیعت ارتباطمون نزدیکتر بود میگفتی اخ, اخ, اخ, اخ, اخ مثلا چقدر وحشدناکیه در ولی ظاهرا میگه شعله تا سرگرم کار خیش شد هر نهی شمع مزار خویش شد حالا من البته از قدیمی ها شنیدم میگن وقتی که نی... نیزار آتیش میگیره م... یه لحظه صورت ناگهانی که نگاه میکنی مثلا چند ثانیه بعد از کبریتو میزنی بینی هر نهی چیدار چ... چ... بینی همه نیستان آتیش که هر نهی هم از پاش داره می‌سوزه این ظاهرا خیلی ناگهانیه چون نگاه شعله تا سرگرم کاری شد شت. تموم رفت و آخر کرد برافروختان آتش خیلی چیزای شگفت‌انگیز ما حسش نمیتونیم چون مثلا درباره اصطلاحات سوارکاریه درباره طبیعت درباره حیوانات نمیفهمیم. تو چیزم همینطوره؟ توی بیلیاد و هم همینطوره یه تشبیحاتی به کار رفته که کسی که زندگی روستایی طبیعی انجام داده باشه میتونه بفهمه یعنی چی براف اون پرسان آتش سنی. بشو توس و دست تهمتن گرفت آهان حالا که کابوس پا شد توس هم پا شد کنه غربان با خواهش با شما زمان در کشی چشم بشو توس و دست تهمتن گرفت از اون مانده پرخواشت رویان شگه آه رفت دست گرفت حالا البته داره از نیت درونیه تو هم صحبت میکنه می که توس هم نازورش نمیریسته و نمیخواسته که و دار بزنه هدف توس در این بیته که از پیش کاووس بیرون بره مگر کندران تیزی افسون بره یعنی اینجوری جلو کاو باشه باشه بعدم حالا الان میبرم دانش میزنم به اون میید دانش بیام بریم حالا فلان از پیش کابوس بیرون بردن مگر کندران تیزی؟ ولی همین یه تخیر بزرگی برای رستان که بعد دستت زدن به دست من از توی دربار بردن بیرون میگه که چی؟ که گفتن برو دست رستان ببند؟ من مرا دست و همه کشتن بر سر اینه که رستم نمیخواد تو عمرش، توی پروندش سابقه بازداشت و دستگیری و این حالا توست میخواد رستم رو کنه حتی ظاهری که مثلا این شر فروکش کنه نمیتونه رستم تحمل کنه مگر کندران تیزی افسون برد. تهمتن برا با شهریار که چند این ملدار در کنار رستم دیگه جوش آورد و با خودش شفت شروع به پرخاش کنه پر با خود شهری مستقیما با شاه پرخاش کرد چندی من آرادش خیلی نمیخواد اصاب خود رو خورد کنی خیلی تندی نکن و نمیخواد مثل آتش از نی چیز کنی برافروزی همه کارت از یک دگر بدتر است زد به چشمش. همه کارت از یک دیگر... یه پیشینه ای داره او از هاماوران رفتنه او از مازندران رفتنه او از آسمان رفتنه موقعی که او او او بطن شاهنامه در مقابل کابوس اون جاییه که کابوس رفته به آسمان حالا سقوط کرده حالا رستم و گیب و گودرز و اینا میان پیداش میکنن تو بیشه شیرچین تو آمل گودرز گودرز حرفای خیلی وحشتناک دیگه از وقتی که اول تو را که دارم میره دستش رو از وقتی که مادر من به من شیره یعنی از بد به تولد کرگی شاه تو جهان دید و هیچ کنه به دیوانگی کابوس دید بسی این شاه نمی دیده من در جهان و فلا بیده و هیچ کنه بسید کابوس ده. بعد وقتی هم که کابوس بیرسه می میگه بابا تو بهتر تشریف ببرید تیمارستان بیمارستان بهتر از یکی برید تو شهرستان، تو شهرستان حکومت کنید. کنی و خیلی به کابوس تندی می‌کنه، گوده ی اینجا باز بشنه شاه دیوان جان اگه اجازه بده من این بخش شاهه مال حفظم دیبانه. بخورید اشکال نداره چون همین دیدم اندر جهان تاج و تخت آهان شاهان پیروز وقت چه کابوس خود کام در جهان ندیده کسی از کهان و مهان یک اندیشه او همین نغز نیست چو GUI به سر اندرون مغز نیست چو دیوانگان است بیهوش و به هر با به جنبت سجار بسیاره اون قسمت بس هم که به کابوس برخاش میکنه میگه تو بیمارستان براد بهتره شده بعد همین بدو گفت که بیمارست بیمارستان همین اولش بیمارستانه برادشاره ولی بله. بدو گفت موجه از بیمارستان یه کمی مشکل وزنی داره باید تو را آبنه چی تا شارستان میگه از شهرستان بگیدام براد بهتر بیمارستان آره و هم اونجا باید میسه که ببخشید غلط کردم کار برای کردن و میگه چه روز رفت در بس و پیداش نشد در ازلت نشست خیلی ممنون خیلی اینجا جالب اصلا کابوز توی شاهنامه به شاه دیوان من روحه. حالا اینجا مرستم زد تو چشم همه کارت از یک دگر بدتر است ترا شهریالی نه هم درقر است مشروعیتش رو زیر سآل بود جلو چشم خودش ترا شایسته ای تو. نیست تو صهرا را زنده بردار کن، براششون با بدخواه را اگه راست میگی با اون که به دشمن خارجی که به مرزها حمله کرده رو برو زنده زنده دار بزن براش او خشمین باششو پرخاش میکن بدخواه دشمن رو خوار کن نه منی که خدمت کردم به این آب و خاک و هیچ چیزی ندارم برای تو هیچ دشمنی و ولی برای تنم بزد تند. یک دست بر دست توز پس نه که توز حتی به صورت ظاهری دستگیرش کنه. کی زد پشت به دست توز بزد تند یک دست بر دست توز تو گفتی نگاه کنی یه جوری مثلا دیدی, مثلا دیدی. این فیلم سینمایی آهنگش تنده اصلا یه فیلمی بگاه میکنی همه اتفاق میفته یه می میری آروم اتفاق میفته اینجا یهو ها آرنگش تون میشه یهو ها اتفاق پشت سر هم میتوان وزر یک دست بر دست توست تو گفتی ز پیلیز جیان یافت کوز کوز رو اینجا من برای یه ضربه بگیریم ز مالا آمد به سر پس چی؟ پس تو یه سکندری خورد با مخص خوب خب یه ضربهی رستن به ایستن. تو اینجا با مغز خوردن زبالا نگونن آمد به سر برو ط برو کرد رستم به تندی گذر میبینید اصلا اینا شتاب گیر یه دفعه اصلا دیدم یه جوری کلمات و خانه شتاب میگیره زبالا نگونن شما که حالا ان شاءالله بخونید این قسمتش رو در نظر پیشنهاد شخصی بنده هست که در این طاش اینقدر تندتر باید بود زبالا نگونن آمد به سر برو کرد رستم به تندی گذر به در شد بدر، اندر آمد بدن یعنی چقدر تفاوت داره اتفاقی نکته به در شد زد در اندر آمد به شد به شد به اندر آمد به شد یعنی خارج شد بدر، شد. در شد یعنی خارج شد به با حالت اندر آمد درخش منو تاج و تاج که سفات روستایی چه برد؟ شاه، چرا شمو آورد شاه کیست؟ کیز چرا خشگین بشه شاه چرا دست دیازد چرا من دست می‌داره توس کیز چرا مثلا باید دست کنه؟ توس کیز دیگه وارد بحث این قسمتش هم که دیگه خیلی رستم از عزت نفس خودش میگه که وابسته به هیچ کس نیست و دیازمنه هیچ گونه حمایت دولتی و حکومتی و شاهنشاهی و اینها نیست دو بازون دو دل جهر نباشید خیلی بیست. ممنون از این فرماییتون و فکر میکنم دیگه من نمیتونم در خیلی شما باشم تا شمده ۲۸۰ ۲۸۰ میشه شنبه ۲۶ ۲۷ ۲۷ ۲۸ آره شمده ۲۸ دهی تا ۲۸ دهی کلاس نداریم ولی دیگه از ۲۸ به تا شور تا حدود شون زهیرده بهمن من هستم و هر هفته در خدمت قدوم شما ده. بله دیگه از 28 دده هر هفته هستم م... جان؟ و نه